رادیو اسپاگتی در 8 دقیقه نویسندگان رامبود جوان محمود طالبیان بازیگران سارا خوینی ها خیلی کسی بود ام... کارگران خیلی خسته شدن ولی خب بد نشد خوب شد آتیلا پسیانی سلیقه نه ای در این خانه به بچش میاد که دقیقاً از بانوی زیبایی مثل شما برمیاد رامبود جوان مامان دیاروسا که آدم خال برام فرستاده میخواست هر دمونو بخوره مائده بی تسهیل کرده خانواده دار خونه دار اصیل نجیب خوشگل حسین مهباهری فرشدار ش جون نه کوبادی گوری خانم خاص را گفته زنگ میزنه محسن قاضی مرادی هاشم گفتم کیفتیکردم بازیگران خردسال آلما اسگوی درست حد من دختر شما هستم شما برنده شدید محمد مهدی احمدی خیلی دلم خوش پدارم زنده بود این وقته که هیچی نمیترسیدم کارگردان رامبد جوان موسیقی بردی یا کیاراست تاهیه کننده محمد رضا تخت کشیان. در گوشه از شهر تهران خونه تقریبا مدرن و امروزی با وسایل چوبی و به هم ریخته رو میبینیم خونه پدرام آرام روی تاخچه شمینه تا عکس هست یکی عکس دختر یکی پدر و دختر و پشت اونها عکس زنی با دختر بعضی از لباس مرد روی میز و صندلی نهار خوریه. وسایل خونه تابلوها و مجسمهای تزئینی هم همه مدر روزه اتاخاب مرد مرد سرجاش جاش نیست اتاخاب دختر بعد پدر پیش دخترش خواب ده پاهاش از تخت بیرون زده ساعت زنی میزنه هر دو دست میبرن و ساعت رو قطع میکنن به نشونه موفقیت دستاشون رو به هم میکبن دوباره میخوابن دختر بلند میشه و روی تخت میشه چشماشو میمونه نگاهی به ساعت میکنه و هم بابا، بابا، بلنشم، خواب موندیم بابا بابا بابا کمک <تصفيق> <آه> بابا <تصفيق> خواب دیدم مامان نیدیه عروسا که آدم فرستاده برامون میخواست هر دومونو بخوره خوشگل بود عروسا که آدم خوشگل میشه تو دو این دور زمانه همه چیز ممکنه قربونه دهنت، آره بله بابا ساعت هشته پدر لحظه میخواد بخوابه اما یهو یه به خودش میاد. ای وای از دست این سر با این زنگش بودو بینم هر دو سریع از تخت پایین میپرد ببینید تخت راجع. من این رو خوب میدونم تو جلی میزن. تو نباید این آشکالات خودم ما داره بابا ترخوزنه چون دوچار رو تربیت میشی بفهم یعنی چی؟ نه ببینید یعنی من با, با این کارم در تربیت تو کوتاهی کردم ولی طردم دیگه یه خانومی عاقل با و بالغ امم ولی و بالغ بهتره دیگه الان همه چی رو خوب می‌فهمم بگو خب خب آقا خانم عاقل و بالغ این ساعتی که مامان گفتم برس زدم مشکلی مشکلی ولی با این زنگ معصومانه انگار بعد از خواب آدم عمیق میکنه مشکل خودش یاران دیگه رو ننداز پژمان با هرس جلوی صورت تکتام مسواکش رو توی دهنش تکون میده پدرام تکتا رو برای رفتن به مهد کودک آماده میکنه. کفش رو ها میکنه و پاش میکنه تکتو هم پولیورشو میپوشه زنگ ساعت بعد ادمو از خواب بیدار کنه اعتراض داری بگو ندارم ولی ما هم خوابالو نمیتونیم زود پاشیم خیلی خب عزیز من هر کسی اخلاقی داره ما هم اینجورییم دیگه مثلا توی یه مقاله خوندم آدمایی که نمیتونن صبح زود پاشن یا دیر از خواب ها میشن از بقی با دارن حالا با هم الان میریم یک صبحونه. یه عالی میخوریم خانومه آلق و و با دو تایی میرن توی آشپزخونه پای میز ها یک سمونه درجه یک. با نبر موافقی؟ او چه جورا؟ با یه تخم مرغ بیشتر نداریم ولی اصلا نگران نباش. ببین با همین یه دونه چه کار میکنن یه دونه تخم مرغ رو کمی بالا میندازه، می‌گیره. بازم میندازه و ماهرانه می‌گیره. تک طالب خان می‌زنه. مایه روی اجاق گاز، روغن توی مایتابه تابه تخم مرغ رو باهوک اینجا توی این مارتا. نشسته و نگاه. پدرام پوست تخم مرغ روی کابینت می‌ذاره. روی همون کابینت ریتم می‌گیره. تکتا هم با دست زدن همراهیش می‌کنه. حالا نگاه کن. وای نه. نیم رو آماده شده. با قاشق تخم مرغ رو از مایتابه جدا می‌کنه. مائتابه رو بالا می‌بره. اما انگار شدت زیاد بود تخممو چسبید به سخت چی چیکو کنم دیگه ولی بهت قول میدم یاد بگیرم مثل اون آقا ژاپنی تو رستوران ژاپنی خب اصلا مهم نیست کره و نون و پنیر و شیر یک صبحانه متعوی و عالی. شیر و پنیر رو از یخچال در خب خوشگل من این بود جلسه مشاوره دارم بگو ببینم کدوم کول چلا برم بپوشم سルメیه کثیفه خب طوسیه تو نداره پسیمونه کرمه آفرین تا تو صبح بخوری منم آماده و بیام بابا جان بابا کل بارم بال میکنن فردا می فرصت داری کدوم کفته فردا دیگه نه خیر مگه چند پدرام کت کره میشه از روی تخت برمیداره داره اما لحظه ای و خب بگی سه شنبه باشه که من دادگاه دارم وای بچم دختر. کتیشون می‌گوشه با آجر لجی خارج خارده. انشالله پیش از فردا. باستشام مثل شنبه راه هم قطعی اری. آره دیگه تو که آبازی جمعه چرا یادم ندادی؟ این دیگه. علاوه. با خودتون باید ازتون میمونه. خیلی خوب نمیخواد نصیحتان کنی. شما زنگی به فهمید که ما مرد افکارمون درگیر چیزهای مهمتره همه چی درست میشود. پدرم مايتابر رو بر می‌داره، دل میشه، اونو سر جاش میخواد بذاره که. تخم مر از صق میافته روی کت کرممی پدرام حالا دیگه چی بپوشم کدمه پدرام کیف به دست زیر بخند دو درون توی راهرو با تک ها خودش رو به آسانسور می رسونه چه حرکت نمیکنه ببین تکتا من به یک اصلی تو زندگی معتقد شدم چی؟ اونم اینه که هر موقع دیرت میشه زمین و زمان دست به دست هم دیگه میدن تا بیشتر دیرت بشه نمی شش، پدرام میشینه تکتا میپره پشت پدر تصمیم گرفته از پله بره بودو بدو از پله پایین میره مهد کودک تکتا تاکسی زرد رنگ جلوی در مهد کودک میسته. پدرام پیاده میشه. پدر و دختر وارد مهد میشن. ورودی اونجا فرش قرمز داره. بچه‌ها بچه‌های مهد کودک توی اتاق‌ها مشغول بازی هستن. از پنجره تکتا و پدرش رو دیدن. پدر و دختر وارد ساختمان میشن. بچه ها با دیدن پدرام به طرف اون می دوان پایتوشو می گیرن خواهان بالاخره پدرام در اثر فشار بچه ها روی زمین می افته. بچه هام اینجا چه خبره؟ تکتاب پدرشو بچه ها اشاره می آقای خانم شما چرا خوشحالید؟ بچه ها رو کنترل کنید زن اولی به کمک دو نفر بچه ها رو توی اتاق میبرن و آهای آرام و نجات آرام. باز نظ اینجا رو به هم دیختید ببخشیدعمون ندا بیای دفتر با شما کاره اگه اجازه بدین میخواام می دورت تا بادی بعدا بیا خدمتون رو خیلی گرفته ببار تو ع زیاد طول نمیکشه. مونتاژر خانومی که به کمک پدرام اومده بود با لبخند پشت سرش میوه. پدرام یهو متوجه میشه بر. "ممنونم خاله رویا." "خواهش می‌کنه." خاله رویا که همینطور به پذیرایی گام‌گاز صاف رفت تو در. پدرام ولی اصلا از اون خوشش نمیاد. به اتاق خانم دولت آبادی میره. شیری من دیرم دادگاه دارم اگه دوباره میخوایی نصیحت کنی بشید مفرم حرف اونو گوش میکنه و روی سندلی مقابل خانم دولت آبادی میشینه و موهاشون مرد <adviser> بگو تو خاله فرناز مرحبی زیر دو ساله ها رو میشنسی خب گفت ازت بپرسم که قصد ازدواج داری یا نه چی <تص> ازدواج <Chambow> <تص> شیری اونو سن مادر منو داره ببین وقتی بهت میگم من کار دارم میخوام برم میدونم برام برنامه خاستگار ریختی دیگه خان جا نمیخوام بشین ببین فرنازی دختر خاله داره که اتفاقا منم میشناسمش نمیدونی چه دختریه تحصیل کرده خونه دار خونه دار اسیل نجیب خوشگل قدش ده سانت بالاتر بگیر از منم لاغرتر مخ یه جوری قدم میزنه که انگار یک ملکه داره تو قصرش راه میره مخ آروم حرف میزنه خیلی از دیدنتون خوش خانم دولت آبادی کنشم اگر بخوام دروغ بگم باید ببینیش شیرین چیه؟ دیگه عجله نداری تو زن حسودی هستی؟ نه واقعا؟ تو که دختر تو خوب میشناسی من حسودم. خب میگم اگه از اگر استولا از تو قد بلندتره مثل ملکه هاست. خب؟ خب مثلا همین بگیرش. بی‌نمک. <تصفيق> جونتو. تو که حسود نیستی. اینجوری هم یه هوای خوب داری، هم رامین بهتر میتونه تعاملت کنه. من رفتم. تو لیاقتشو نداری. منو بگو چرا تعریف کردم. خدا وسخال شیرین. لاقل به فکر خودت نیستی به فکر اون بچه باش. <تصفيق> پدرام وارد دادگاه میشه. سربازی درو براش باز میکنه. مرد و زنی با هم صحبت میکنن. او مرد انگشتش توی بینیشه. مرد <تصفح> نه نه به راهش توی راه رو ادامه میده. مرد معتادی با زنش حرف میزنه. دو نفر دیگه دعوا میکنن. به دفتر دادگاه رسیده. سرباز جلوی پاش بلند میشه. سلام سلام به بفرمایید چی شد پدرام بازم خواب موندی؟ نه باز دوشنبه به رو قاطی کردم. علی سلام داره با کمینام دادگاه شروع شد؟ سلام. بعد ببخشید از همه عذر میخوام آقای قاضی مایل پیش از شروع مداره که مربوط به ملک رو خدمتون تقدیم کنم. هرچند که امروز توضیحات کافی دارم خدمت شما. ملک بله ملک آیا آرام. آی آرام کدوم ملک به قاضی مزره پروندارو مدلی نگرده موضوع دعوای امروز طلاقه پدرام متعجب طلاق قاضی با سر تعیید می پدرام نگاهی به پشت سرش رو نفرات نشسته می بزه مرد کمیچاق حرف قاضی رو تایید؟ <تصفح> آقای سعیدی سلام کم آورده کاملا حق با شماست من میتونم این چند لازه بدم دیرونو وارد اتاق دیگه میشه چند نفرم اینجا مقابل قاضی الان بر میگردم در حال با این مدارک ناقص من چاره ندارم جز این که جلسه دارم جناب آقای غازم. با پرونده در دست از دم در پیش قاضی تمام مدارک اینجاست شما؟ پدرام آرام هستم، وکیل پایه که دادگستری و وکیل این پرونده. و شما اینطور که معلومه آقای آرام شبرا اشتباه اومدن. ای. تو اینجا چیکار می‌کنی؟ مشقوله به وکیل ای میگه که بلند میشه. پدرام نگاهی به قاضی، یه نگاهی به حاضرین The user wants me to transcribe the provided audio و برای همتون اینطور که <laughs> رو خدا کسی بلند نشه پدرام توی همون دادگاه اول با همون نفرات کاملا درسته که من اینجا هستم تا از شما دفاع کنم آقای سعیدی چون شما موکل من هستید البته خیلی طبیعی که میتونستم اون بر دعوا باشم حتما میپرسیم چطوری اینکه خانم شما موکل من بود به همین سادگی بنابراین دوست دارم خارج از این دعوا، دعوا، دعوا، همش دعوا. پس میپرسم. هر هرچند که به خودم هیچ وقت اجازه ندادم که فضول باشم ولی میپرسم چون اینجا دادگاه هم. و این مکان جایی برای مداخله، مذاکره، وساطت و محکوم کردن کسی که حق با اون نیست و تلاش ما همیشه همین بوده متشکرم. دیگر زیاده. به هزار نگاه میکنه مرد کمی کمیچاف متوجه حرفاش نشده قاضی پای آرام دلو بربان ما که همه گیت شدیم سوال چی شد کدوم سوال؟ داشتین سوال تر میفرمدید بچه ها خوب. خوب. خوب. واضح نبود؟ شما دوتا بچه دارین تکلیف این بچه این وسط چی میشه؟ متاسفانه در طول این جلسات تنها چیزی که مهم بوده مال و پول و مهریه و شیربه ها و نفقه مال من، مال تو، سه دوی مال من، چهار دوی مال تو نصف فروشگاه، تمام خونه، ویلای شمال، اون زمین کردان صد میدونه بابام که غرض گرفتی، پسرمون که بهرشو نمیده وای وای آدم بالا میاره آقای غازی، آقای منشی شما تابه تو این جلسات یک بار از دهن این پدر و مادر راجب بچه ها چیزی شنیدین؟ ای آقا قصه بچه ها رو نخور اونا خودشون بلدن حقشونو بگیرن قصه منو بخور آهای غازی هنوز کبیدن مشت به صورت موکل جرمش سنگینه؟ البته آقای آرام بله بسیار خوب پس اعلام انصرف میکنم غازی با دست اونو صدا میکنم بله جناب علی، خودت هم موقع طلاق به فکر اون بچه بودی؟ من که منش به فکر تکته بودم. پس چرا کارتون به طلاق کشید؟ خب شو، بخاطر خب گوش کن ببین چی میگم. یه خانومی هست، بسیار متین و متدهین خانواده خوبی هم داره. برادر نظر گرفتنش. یعنی <تصفيق> چی؟ یعنی چی؟ نداره دیگه. تا کی می‌خوای اینقدر شلخت و بی‌نظم باشی؟ دوشم باسیش هم برای کنیم. یه خوردن به فکر اون بچه باش. آقای غازی من الان در حال دفاع بازی خود فکر کنم تا الان به فکر خودت باش من الان کار دارم محاله ازدواج کنم پدرام میره پیش مرد کمی چاق میشینه غازی با هر گوش اشاره میکنه بیا پدرام حواسش نیست آقای پدرام آرام با من این قربان بله اگه هست تش اگر راجب اون قضیه است باید کنم که موضوعیت نداره. اتفاقا داره، خیلی هم خوب داره. پدرام لحظه درنگ میکنه، نگاهی به حاضرین میندازه و به ناچار بلند میشه پیشواز. ای خدا، اینا کی به من معرفی کرد؟ پل روبروی ساختمان محل زندگی پدرام با طبقات خیلی زیاد. پدرام روی توارص رنگی نشسته و روزنامه میخونه. ناگهان مقداری خاک از سقف روی سرش میریزه. سریع بلند میشه و خودشو جمع جور میکنه و یه نگاهی به سقف میکنه از درشویی بیرون میاد متوجه صدای پا در طبقه بالا میشه دقت میکنه بله صدای پاست و حتما آقای احمدی طبقه بالا میره دم در خونه آقای احمدی خش به در خونه میشه بالاخره پیدا شد میری یه سال گم و گور میشی هممون اونو خونه خراب میکنی اگه جرئت دارین درو باز کن چیه؟ فکر میکنی اگه که بیا من نمیفهمم تو خونه درا میره من میشنوم مثل اینکه یادت رفته منم وکیلاما ها درو واکن بهت میگم این درو واکن فکر میکنی میتونی در بری کور خوندی این دفعه دیگه گیر افتادی این تو بمیری از اون تو یا نیست. زبونم مو در موردن قرار گفتم احمدی این توالت خراب شده تو درست کن میگی چش باز دوباره میری خارجی گم گور میشی این دفعه دیگه میخوام یاقت رو بگیرم احمدی اه به طرف دربر میگرده زنی ابوس با ماسکر میبینی سبزنگ روی صورت در رو باز داره پدرام جا خود؟ شما متجد. ساکن این آپارتمان هستیم؟ زن با علامت سر تعیید پس آقای دکتر احمدی از اینجا رفتن ام ام زن با علامت سر رد شما همسر جدیدشون هستیم؟ بازم زن رد میکنه به بر حال من که سر در نیوردم شما که هستیم. شما متوجه اعتراض من شدید زن متوجه نشده ام. نگاه کنیم سر خودش رو که گشت رو شریفته به زن نشون میده ببینید ماجره اینه که لوله دستشویی شما که احتمال مربوط میشه به سیفون سیفون خراب شده در نتیجه سقف ما آب میده سقف آب میده و گچ ریخ رو سرم که البته من دیگه بهش کردم. کردن بدران فکر میکنه زن لاله و احتمالاً کر با حالت خاصی با اون حرف میزنه و از دستاش برای فهمش استفاده میکنه متشکرم خودحافظ زن می میگیری اما جلوشو میگیری میره چونه درون رو می بر. سلام خوش وذش و این سرویس جوی راننده در ماشین رو باز میکن ابتدا پسر بچه پیاده میشه و بعد تک تا. گفتم کلی دوست پیدا میکنی خوبی؟ خوبا. خوب بچه ها بریم بریم تو سر به. به طرف ساختمان میه پدرام از آسانسور بیرون میاد و در راه به جمع سرفری می رسید تک تا یه بازی رو با پدرش شروع میکنه بفریم؟ شما نمیشناسمتین؟ قیافه‌تون آشناس. آخ خنده‌تونم آشناس. فکر کنم صبح می‌رفتین مهد کودک دیدمتون. بله، حالا شناختی؟ نه هنوز دقیقا آشنا تکتا از تو کیفش کلاه قرمز رنگی رو در و رو برعکس سرش می‌ذاره. حالا چه تو نه حالا شناختمتون شما باید دختر آقای پدرام آرام باشین ها؟ درست حد دید من دختر شما هستم شما برنده شدیم <تصفيق> جایزم چیه؟ پدرام بغل باز میکن و دختر کچولشو بغل میکنه هم دیگر سلام. رو میبرسه. سلام پدرام تکتارو زمین میذاره و با مانی دست میکنه. دوست بده کردی؟ مانی مانی <تصفيق> سلام مانی سلام من پدرامم شما خوب است خانون؟ ممنونم مشه تو پرتاب کنید؟ من برای گفتم که شما قهرمان المپیکی. حرفتین یه المپیک خانگیه. خاش بابا بابا بابا اش بگم آخه من که توپ ندارم. زن همسایه لپ‌خند می‌زنه. تک دا از توی کیفش یه توپ کوچیک ماهیتی درآره. برای پدرش پرت میکنه و اونم با مهارت می. سفارش بدین. اول بخاره به اون تابلو بعد بخوره به اون دیوار بعد بخوره به اون ستون بعد بخوره به اون دیوار بعد بیا جلوی پای مانی وایسه سختش کردی یا با لبخنده زن همسایه مواجه میشه و تصمیم میگیره که پرت کنه میچرخه توپو توی دستش خیل میده چشمشو میبنده تمرکز میکنه چشمشو باز میکنه زن همسایه و تکتا و مانی منتظرن بلاخره با دقت زیاد توپ رو پرت بکنه در کمار تحجاب زنه همسایه و مانی و خوشمالی تایتا توپ به همون مسیحا مخواه اجلوی زن رد باشه و می راجعه کنیم خب این لفه دیگه جلوی در آسانسور بدوین خیلی <تص> فوقالده کاری نداشته شانسی زدین شانسی؟ بستگی داره تعریف شما از شانسی باشه آه بهتر شد سرم؟ گچ آه خانم نمیدون این همسایه بالایی ما پدر ما رو درورده هیچ وقت نیست اموزی هم ایک در دروا کرده خب گفتم چند تا کارگر بیان هم لوله دستشویی رو درست کنن هم خونر مرتب کنن فکر میکنم الانا پیداشون بشه دیگه شما چرا زحمت کشدی؟ خواهش میکنم طبقه بالایی شما جدیدن من زندگی میکنم من واقعا متاسفم خیلی ببخشید خیلی معذرت می‌خوام صورت تفاهم بوده هیچ مفهم فراموشش کنین مهم نیست موافقم ا کی تاش بوردید من به تازگی به تازگی من به عنوان یکی از ساکنین این مجموعه به شما خوشامد میگم خیلی ممنون اگه مایل باشین مالی جون بیاد پیش ما که گردو خاک نخوره شما رو تر با کارگر به کار خونه برسید نه نه مرسی مزاحمتون میشه اه. میشه ماما نه عزیزم نمیشه خب با شما خیلی اصلا نکنی ماما،, ماما پدران با تکتا و مانی وارد خونه به هم رفتا و کسی میشه. شد تکتا پلاش و در میاره همون کفه اتاق میگذار خب مانی جون خیلی خوش اومدی حالا شما دوتا هر چقدر بخوایم میتونیم با هم بازی کنیم شما هم با ما بازی میکنی؟ نه من فکر میکنم به جای بازی کردن بهتری ذر خونه رو تمیز کنم شما مشغول شید. مام میتون کمک میکنی <متار> اصلا حرفشم نزنید کمک شروع شده مانی با دستمال شیشه رو تمیز میکنه باب تبه پدرام نیست مانی شیشه پاک کن میاره میزنه و محکم شیشه رو پاک میکنه برای رفع خستگی پدرام با ها حرکات رقص گونه انجام پاک کردن شیشه ادامه داره استراحتم هم تکرار <AM2> enfin... میشه ممترح还是... مانی روی مبل بالا پایین میپره و پدر و دختر باز هم با همدیگه حرکاتی رو انجام میدن. پدرام با ریتم موسیقی جارو برقی میکشه و گردن و سرشو حرکت میده. تکتا نیما روی مبل بالا و پایین میپرن اما کارم میکنن. پدرام تیکشان رد میشه. تیکشان میگرده یه بار دیگه. مانی میخواد مبل و جارو بزنه. پدرام میگه نه. جارو رو از مانی میگیره روی مبل میکوبه و خاک زیادی بلند میشه. بچه ها ظرف می و پدرام نشسته مبل تخت خوابشو بر و هر سه نفر روی مبلن پدرام می زمین گردگیری تابلوها و میز استراحت با حرکات موضوع و پرتاب توپ از طرف پدرام در می کن استراحت پرتاب چند توپ. و خوشحالی هر سه زن همسایی خونه پدرام به ما انقدر کار کردی خیلی خوش گذشت کار کیف هم چی یه سر خودمون رو گرم کردیم خوش kommen چایی بگیری یه چای یا قهوه چیز در باشه نه دیگه اومدم مانی رو ببرم خانم من خانم خیلی اخلاق بدیه که برای همه چی اصرار می‌کنی من اصلا خوشم نمیاد مانی از مبل پایین میاد و پیش مادرش میره پدرامو تکتم جا خوردم از این رفتم دعوت شما رو میپذیرم آخ جون آخ جون آخ جون. تکتا چشمای پدر از پشت میگه با یه قهفه که درجه یک چطوریم احفاهای بابا تعریفیه تکتا جان اه. مانی بودو بریم بازی دستایی تکتا رو کنار نزن بفرمی خواهش بکنم بفرمی الان با یک قهفه فردالا میام خدمت تکتا و مانی میرن برای بازی <تصفح> جوش بیا دیگه پدرام توی آشپزخونه باره سر کتریه زن همسایه میخواد روی مبل بشینه که عکسای روی شمینی توجهش رو جلب میکنه. عکس تککه تکتا جفتی با پدرش و عکس پشت اون عکس تکتار رو کنار میزنه، عکس ستایی اونها رو می. لاله مادر تکتا و البته همسر رو صابت پدرم با سینی قهوه میاد قهوه چطوره؟ عالیه. در و زن همسایی روی موب رو قهوه روی هم نشستن و خب چه خبر از چی؟ نمیدونم آه آه خونه چطور شد؟ آماده شد خیلی کسیف بود کارگرم خیلی خسته شدم ولی خب بد نشد خوب شد من اصلا نمیتونم خونه کسیف رو کنم این همه میدونم بله، متوجه شوهر شما چطور؟ همسر من چند سال پیش توی تصادف فوت کردن خیلی متاسفم چرا؟ اتفاق دیگه مرد خیلی خوبی بود و البته پدر خیلی خوبی بود برای مانی معلومه چطور؟ از... از مانی، از شما از روحشون شاد ممنونم مهدی کودک دفتر خانم دولت آبادی پس عاشق شدی من کی هم چه حرفی زدم اینجوری که تو راجع به این خانم حرف میزنی نیاز به اعتراف نیست نه میریم موضوع تکتاست این بچه نیاز به مادر داره جالبه حرفای خودمو به خودم برمیگردونی از زمانی که بهت میگفتیم ازدواج کن مسخره‌مون میکردی اما حالا خودت که دست به شدی خودتو مسخره کردی یه زن با یه بچه؟ چه اشکالی داره؟ بنده خدا تو به زور خودتو زفت و رفت میکنی من منم خرج دو نفر دیگرم بدی. ببخشید مگه بعد از تک تنه گهتاری میکنم دو نفر نه چهار نفر. تازه اگر لاله بفهمه میخوای ازدواج کنی یه روزه از آپارتمانش مینذت بیرون. نکنه می‌خوای بری خونه یکی زنت؟ نه یکی از خودش خونه نداری. با با بس دیگه شیرین نه به باره نه داره من یه کلام گفتم اگر بخوام ازدواج کنم این خانوم مناسبه تو هم که دیدیش آره خانم موجهی هم به نظر میاد اتفاقا را رفتنش هم رو رفتن دخترخاله خاله فرنازی پاش اینا اونجوریه برو خودت تو مسخره کن یه شباتی هم به لاله داره مثلا اینا برای همیشه داره میره آلمان جالب نه نه بابا خودش گفت ببین تمام زندگیشو فروخته تا یه ماده دیگه داره از ایران میره برای همیشه این خونه رو اجاره نکرده این دکتر احمدی از همسایگی من دیونهه از اغمام نزدیکشه چون فعلا جا نداره اومده اینجا نشسته تمام خانواده‌ش هم خارج از ایران زندگی می‌کنه می‌بینی چخشبی لالنس تو که نمی‌خوای باش بری خارج نه پس چی من فکر می‌کنم اگر یه نفر اینجا داشته باشه می‌مونه ها یعنی فکر می‌کنی تو آدمی هستی که کسی به خاطرت اینجا بمونه تو همونی هستی که یک سال برای گفتن یه چیزی وقت میخوای ها خودتو که می‌شناسی باشه. باشه بالا زیاده داری وقتمو میگیری. بابا شیری من نیاز به مشورت دارم. تو نیاز به عقل داری پدرام. خیلی خوب. خاله شیری نگه عقل بشم برام زن میگیری. این اتفاق نمیفته. عجب محدوده‌ای خشنی داری. چرا رفتاره بدی با مردم می‌کنی شما اینجا؟ ازتون حضرتون میکنم می‌کنم. سرام به گرامی برسونید. توی پارک تکتو و مانی با هم بازی میکنن. پسر درشت هیکل، اونا رو گرفته و بچه‌ها نمیتونن توپو ازش پاس بگیرن. آی آی آی آی مانی گریه بی گریه ها آخه نادیدین که چی شد چرا دیدم ولی گریه کار درسته نیست صاف با زبون خوش گفتیم تو پا پسته میده پتک بزنه من جای تو بودم با کله میرفتم تو شکم مانی به فکرت آخه باباش چه نشسته باباش با من تسلیم نمیده می دو طرف پسر دروش هیکل و با سرو دست میره تو شکمش پسر نقشو زمین میشه پدر پسر به طرف بچش میره اونم دروش هیکل با سیبیل پر پدرامو تکون میاندا اون تکون های های با منی کاری داشتین آره میخواستم ادایز کنات بزنه اولا مراقب حرف زدن تون باشین بعدم بچتون ادب بکنیم که اینجوری تو بچا رو گرفته و کتکشون زده بازی میکنن دیگه ببینم با جزء بازیه دیگه بله پیدرام تکتا و مانی رو در کلومه خودش کرد از دور پسر توپ رو برای اونا پرت میکنه تکتا توپ رو میگیره هر سه به طرف خونه گرفت ستایی توی آسانسور کابشن بچه ها دست پیدرامه جونم خیلی دلم خاش پیدرام زنه بود اون وقتی دست هیچی نمیترسیدم تو الانم هم نباد از چیزی بترسی چون که پدرت پیش فرشته هاست حالش خیلی خوبه همیشه داره تو رو نگاه میکنه مراقبته و میتونی باش حرف بزنی هر موقع هم چشمت مبندی صدا میشنوی ببند مانی چشمشو میبند چی گفت باز میکنه هیچیم حرف نمیزنه. من دلم میخواد شما پدرم من باشید <تصفيق> پدرام مستقلاً انگورشو روی کتاب میذاره. <تصفح> <تصفح> آ رسیدین. طبخین چاره. بفرمایید. نجات پیدا کرد از اون وضع. خب دیگه من بریم خونه اینو بفرماین. پدرام تونجا بابا ما نمیبینین. اول بچه‌ها و بعد پدرام از آسانسور خارج میشه. ببین. <تصفح> <تصفح> درسته کردم پدرتون نیست. ولی در عوض تو خیلی چیزا داری مگنه تکتا چی داره؟ بذار یه رازو بهت بگم چی؟ تو یه گنج تو خونتون داری که از همه چیز دنیا بارزش میدونستی؟ نه چه گنجی؟ تلاست؟ از تلا هم بارزش داری. این گنج باعث میشه تو تا آخر عمرت خوشبخت باشی کجاست همیشه جونه چشمته هر چقدر بزرگتر بشی بهتر میبینیش شما دیدی؟ آره دیدم خب دیگه خدافز برو خونتون خدافز. خدافز. خدافز خدافز خدافز مراقب گنجت باش زن همسایی دم خونه پدران پدرانم در رو باز میکنه خانم زمانی موضوع گنج چی آقا یاران چی؟ گنج این حرفهایی که به مانی زدین آها خب راستش واقعیت به بچه گفتم؟ واقعیت شما چی میدونین؟ از کجا میدونین؟ چی رو؟ خودتونو به اون را نزنین کدوم رو؟ من ازمان متوجه نمیشم شما چی میگیم شما هر حرفی دارین به خودم بزنین درست نیستش که به شما بگم من فقط خواستم مانی رو از ناراحتی در بیارم ناراحتی؟ کنچکافی تو کار مردم رو اینجوری توجیح کنید؟ راسه اصلا فزولی نبود. به هر حال من نمیدونم که شما کی هستین و چی میخواین. ولی بهتون اخطار میدم. این یه میراث خانوادگیه که شما اسمش رو گنج گذاشتین و من قصد ندارم که از دستش بدم. روشن شد؟ من اصلا متوجه نمیشم شما چی میگین. من فقط میدونم به حرفی که زدم اعتقاد دارم و اونم شما این. قاش می دیگه شعر نگین. فقط مراقبه حرف زدن‌تون باشین. پدرام با سر میگه باشه چشم توی خونه میره و درو می اما عصبی و ناراحت مشت به دیوار میکوبه با شدت در رو باز میکنه خانم زمانی دست به سینه هنوز پشت دره مکسی میکنه و با سر دوباره میگه باشه باشه در رو میبنده این بار به پاش میکوبه همونطور عصبی درو در باز کرده و خانم زمانی دست به سینه با اخم بهش نگاه میکنه با دست میگه بفرمایید اما جوابش فقط اخم خانم زمانیه دستی بلند میکنه و خونسرد در میبنده این بار دو دستی میکوبه تو سرش بازم درو در باز میکنه خانم زمانی در حال رفتن بود اما همچنان اخمار بود پدرام میخواد خودشو خونسرد و وضعیتو عادی جلوه بده گرده روی در رو با انگوش پاک میکنه و در رو محکم میبنده ولی بلا فاصله باز میکنه سایه در حال رفتن خانم زمانی رو میبینه که میایسته و معلومه. دست معلومه معل یهو یه مردی رو پشت در میبینی لحظهی مکس میکنه دوباره در رو باز میکنه آقای آرام بله آقای نخایی مشکل پیش اومدین <تصفح> خودم حلش میکنم لطف کنیم بیسته در حلش کنم آروم در رو میبنده و عصبی دستش رو تکون میده آروم در رو باز میکنه <تصفح> حل شد پدرام در رو میبنده و باز دو دستی توی پیشونی خودش میکنه خانم زمانی توی خونه خانم زمانی توی خونه از توی یک کتی اصطوانهی سند خیلی خیلی قدیمی رو در میاره مثل توماره سند لوله رو باز میکنه و نگاه میکنه مانی هم داره اون رو نگاه میکنه عینکش رو از چشم بر میداره. چرا نخوابی مانی؟ تو فکر گنجم هرچی گرشتم نتونستم پیداش کنم. بیا بقل ما مانی توی بقل مادنشون <تصفيق> گنج یه از پسرم وجود نداره پدرام پدرامجون گفه است چی شد که یه حرف بهت زد با اون پسر قولیر دوام شد باباش خواست من دوکنه پدرامجون نزاشت خوب منم گفتم اگه بابا دشتم از هیچ کس اون وقت پدرام هم گفت که تو گنج تو خونه داری آره گفت که بزرگ میفهمی راست میگه شاید پیداش میکنم باشه ولی الان باید بری بخوابی فردا دنبالش بکن باشه باشه الهی غار کنه پدرام کف ریش زده و توی دستشوی ریششون بیزنه دیدی چه برخوردی باهات کرد هم که شده بودی بعد یه رفتار خشق مردونه باش میکردی زنگ در خونه خانم زمانی در بازو میشه دست گل بزرگی در در دیده میشه این گل برای شمایه مال من؟ شما؟ من پیک هم بلشه خمام برای شده گل به دست خانم زمانی داده میشه زمان نهای میکنه اما هیچ کس پشت گل نیسته از پیک هم خبری نیست نفهم چی شده باید رسمن ازت نظرت پدرام ادامه ز اصلا نباید خودت گناهکار بدونی نباید بریم مینت کشیم گل بزرگ توی خونه خانم زمانی کارتی روشه بامزی زیبا عسخایی ما رو بپزین زمانه کارو برمی داریم با ریش زدن پدرام تموم شد لحظه‌ای توی فکره که گرد و خاک و گج از سقف دوباره روی سرش میریزه عصبی میره دم خونه خانم زمانی سلام آقای آرام سلام خانوم شما هنوز لولا درست نکردین؟ این بله کفی رو عرض میکنم وای خیلی متاسفم شکسته نه خیر. باد کردی. معذرت میخوام رئیسیت مدیره گفتن که از فردا مأمور جدید تأسیسات میاد رئیسیت مدیره و بازم ببخشید یخ بذارین روش از راهنماییتون ممنونه آقای آرام بابت دیشب معذرت میخوام. یه کمی عصبی بودم فکر میکنم کنم به چرا تفاهم شده بودم خودتون رو برای این چیز ناراحت نکنین. بابت اینم م می چی؟ خای تو میدونین دیگه باز هم معذرت میخوام هم برای دیشب هم برای سرتون برای سر معذرت میخوام فدای سرتون؟ اصلا سرم میشکست شما نباید از خیلی کردی، اصلا تقصیر از من از من سر تقصیر اصلا سقف من باید محکم باشه گفتین بابت اینم متشکرم اصلا ندیدم چی بود اصلا مهم نیست هر چی از اصلا قابل شما رو نداریم فقط اینو بدون اینو بدون که من که من اه! نمیتونم بگم ولی نویز بهت بگم هیچ وقت دوست ندارم ببینم ناراحتی دیگه هیچ وقت از من اسخای نکن من رو ندارم اصلا شما چرا باید باشی؟ رئیسی اتمادیدو باید شرمنده باشه که نمیتونه یه تاسیساتی جدید پیدا کنه اتفاق افتاده اقای آرام تا حالا توی رویا بوده اه. و... پیاز داری؟ نه اتفاقا دارم میرم خرید برای شما میگ زمانی از جلوی نگهبانی ساختمان رد میشه. سلام علو شما. سلام خاله زمانی، حالشون خوبه؟ ببخشید این زمانی، ایکول خارج نمی‌کشم. برای شما آوردم. مطمئنید مال منه؟ بله، پی کو بورد. نه کیه؟ نه، میخواد بره بالا. نه، چون گفت آقا من شهریه هر که ساختیمو قانون داره. به هر حال گلی دیگه. به قول شاهر که میگه تو توانی گلی بکین و برو. بعد الان که هنر نمی باچن. باچ زمانی با دست گل توی خونه. اون روی میز بسه. میشینه و نگاش میکنه یه پاکت روی میز. برش می پاکت رو باز میکنه کنیم. پیش نامه است. مفاخرزاده از... فردا بعد از ظهر برای امر خیر در معیت خانواده خدمت می رسیم. مفاخرزاده اصل. ماشین آبی مدل بالایی جلوی ساختمان تور باز میکنه مردی با لباس و کفش معمولی از اون پیاده میشه در عقب و باز میکنه مردی با کفش و شلوار شیک و گرم و قیمت در دست پیاده میشه پیرهن سفید و جلیقه قرمز پوشیده پاپیون قرمز هم زده و یک شنل مشکی پوشیده عینک آفتابی و شال پوست روبا هم داره زنی هم از ماشین پیاده میشه خیلی شیف پوش و خیل دو نفر خدمه در کنارشون ایستنن زن دستگش های سیاه پوشیده مرد نعوی میکشه ظاهراً همون مفاخرزادی اصله راه میفتن به پل مقابل ساختمان میرسه. هر چهار نفر یاد مدهای تبلیغاتی میفتن و به نوبت روی رانوی خیالی میرن به انتها که میرسه مکسی میکنه سری تکون میده حرکاتی با دستش میکنه، شنل و شالشو بر می داره و بر میگرده. نوبت خدم است روی پل به انتها می میرسن یکیشون رو یه بری میکنه، یکیشون کلاشو بر داره. اون یکی هم کلاشو بر میداره. دست در گردن هم چرخی میزنن، یه چرخ دیگه و دست در گردن بر می گردن. حالا نوبت زنه. خدمه راه باز میکنن. زن با شال پرپری سیاهش و اون لباس قرمز و عینک کهش روییون بابرین پرنت ما رو کش. نه که تو زندان رو پرق میخواابدی بفری خدمتکار کوتاهتر ابتدا وارد ساختمون میشه. پولی رو روی میز نگهبان میزره نگهبان هاج و باج نگاه میکن سه نفر دیگهن وارد میشن خدمتکار بلندتر انگشش رو خییس و اون روی میز رو بر میداره می نگهبان تعجب میکنه. به آسانسور می رسه که اون ستام توشه. چهره‌خیم زن مسخره بازی او میره داخل. در آسانسور بسته میشه. در خونه زمانی باز میشه. چهار نفر رو پوشش در می‌ده. زمانی جا خواهد. زن جلو میره و با زمانی روبو سیم می‌خورد. رو. مفخرزاده استم. مفخر حشوتی ای این ازدم. پوی داداش داش. همون چیری که تعریفشو کرده بودن فکر میکنم اشتباه گرفتیم هر چهار نفر به هم نگاهی میکنن اعتناب وارد خونه میشن و در رو میبند عزیزم عجب خونه قشنگی داری به سلیغت تبریک میگم منچکرم ولی اینجا خونه من نیست ای آه، آه، یعنی ما واقعا اشتباه اومدیم من که گفتم معذرت میخوام خواهش میکنم معذرت میخوام بفرمایید یعنی شما خانم گلشید زمانی نیستید زرکی چرا؟ خودم خدا رو شد ما فکر مشتبه اومدیم شما فرمودین که از طرف یه آدم بسیار آشنا به من معرفی شدین میتونم بپرسم اسم اون آدم چیه؟ راستش ما از طرف نمه چی؟ اسم آبچه اسم خوهرم مگو دیه قشنگه نه؟ خب بله راستش ما با اون فرد آشنا قرار گذاشتیم که شما رو جلسه آینده چیکار کنیم سرپریز کنیم براوو براوو بهتون تبریک میگم کنم و ازتون خواهش میکنم که بپذیریم نمیدونم از پر ملودیه یا پشم اون حیونه زبون بسته. قبول <تصفيق> می‌کنین؟ چی رو؟ تبریک شما. شما چقدر عجیب حرف میزنین حرف زدن من ممکن عجیب باشه ولی نه به اندازه زیبایی و متانت و <تصفيق> لاوندی. نخیر. زیبایی و متانت. جیگری. نخیر. نه. سونگری ولی نه اندازه شما و خواهش میکنم که قبول کنی بسیار خوب قبول میکنم سلیقه ای در این خانه به چشمی میاد که دقیقا از بانوی زیبایی مثل شما برمیاد متشکرم میتونم چند تا پیشنهاد بهتون بکنم خواهش میکنم <تصفيق> <تصفيق> میتونم مثلا این تابلو رو بردارم بفرمایید یعنی منظورم اینه که گاف صندوقتون پشتش نیست گاف صندوق بله. نه ندارم آه. یا مثلا اگه بخوام این تابلو رو بردارم کجا اونجا. اونجا نه همینجا بهترین جایی ممکنه یا مثلا اون یکی آیا پشتش گاف صندوق مثلا نه خیر. من اصلا گاف صندوق ندارم ایرادی نداره خانم زمانی خیلی ها هستن که گاف صندوق ندارن بعضی از مردم ترجیح میدن پولشون رو تو بانک بذارن یا در یک جاهایی از خونشون اونو مخفی کنن آقای مفاخرزاده خانم هشمت مفاخرزاده اصل فامیلی سختی دارین بله ما خیلی طور کشید تا بهش عادت کردیم میفرمودیم میشه شه کنم توضیح بدین چرا زحمت کشیدین به اینجا اومدین؟ یعنی در واقع چه پیشنهادی دارین؟ می‌خاین بگین مم. که اون نفاخیزاده دستگرو کارم جلو به دفید نرسیدین. چرا رسید؟ فقط نفهمیدم چرا اصراری کرده بودین. اصراری از اینکه چرا شخصا نه تو این سم خدمت برسم و اون هدیه رو بهتون بکنم و حالا فرصت این رو دارم که بهتون بگم برای چی خدمت رسیدم. یه امر خیلی نمایشی کنار مبل گلشید زانو ز نه خواهش میکن بریم ببینیم کیه به خدمش میکن نوکرات می. خدمکار بلند قططر که هنوز عینک آفتابی به چشم داره در رو باز میکنه برید خانم زمانی تشریف دارم شما؟ من آرام هستم بله آرام هستم خوش به حالت صبر کن. خدمتکار برمیگرده توی خونه کنار همکار کوتاق قدش یا آقای اومده میگه آرومه خریدم کرده بگیم بیان تو گلشید از جا میپره پدرام میتونه نشه می مفاخرزاده و ملودی منتظرن ببینن چه کسیه سالام پدرام با دیدن غریبه ها تعجب کرده زبونش بنده خدمتکارتونه نه خیر آقای پدرام آرام همسایه محترممون هستن گلشید به سمت پدرام میره برای خودم خرید کردم گفتم که برای شما خرید بکنم زحمت کشیدین خرید <تصفح> خیلی ممنون گلشید میخواد پاکت ها رو بگیره که خدمتکارات پیش دستی بکنن کتا قدم میگیری میده به بخری یکی از پاکت ها یه هفوهر میشه توش سیب سبز. این گیر چیه؟ طالبی <تصفيق> منظورم یه همچین طالبی مزخرفی رو از کجا خریدین از داروخانه <تصفيق> خواهش میکنم اجازه بدین از این مبد میواهاتون رو من تقدیم کنم من باقی میوهی دارم که البته سیپای اون بسیار معروفه راست میگی زرده من بالای تپ ما مفاخرزاده با ایما و اشاره و حرکات لباده هم به خدمتکار میفهمونه که خب من دیگه موضوع میتونه بیشم خواهش میکنم ببخشید خواهش میکنم ببخشید موضوع شده بزنگ. خدمتکار بزنگ. کتاخت دوتا پاکت دیگر رو هم از پدرام میگیره پدرام به طرف در هزارشون و گلشی در میره بعد رن. میگن برای عمر خیلی اومدن <تصفيق> ما برک بشیم قرار است اتفاق مبارکی بیفته. پدرام خیلی ناراحته. آدامو همانی بود که زالو زده بود. ظاهره. امم. ها، به عزتون. خایش و گلشید میبینه که پیدرام پشت سرش یه دسته گل مخفی کرده بوده که بهش بده اما نه. مفاخرزاده مخفیانه داره خونه رو ورنداز میکنه شما اونجا دنبال چیزی میگردین؟ دستشویه هی سرویس فرنگی اون بر خرابه شبه ماشین در حال حرکت جلوی تابلوی انبار سیب زروند به طرف طب رو میستن هر چهار نفر وارد انبار سیب میشه. نه خدا بکنی خوششون اومد؟ مزخرف است. با شما احمقا حتی نمیشه رفت آفتاب بدوش. همش بازیه. اطرافشون بیخودی منو قاطی اینا نکن. تو خودت از همه بیشتر گند با اون همه ادا اطوارت. ادا اطوار؟ دقت نکرین چه جوری دلش رفته بود؟ مفاخر کلاگیسشو درمیون. کچل. شال پوست رو روی مرد قد بلندتر می‌ذازه. اونم چندشیشه. لباسا رو در بیاریم، لباسا رو ماشین تحویل بدیم. برو بغل بیاد صد دفعه گفتم از این بدم میاد. بیاد مفاخر لباس های آریتی رو در میاره زنی هم که به اسم ملودی و خواهر زده شناختیم سعی میکنه آلات و زینتیش رو از دستش در میاره اما خیلی سفته دوست کوتاه قدشون هم منجاست اونم لباسش رو عوض میکنه شروار گرم کن زیر شلوارش بوشیده به نظر من که برای رای استارت اصلا بد نفتیم نم شد مثل بعد آدم کار خود انجام میده بالاخره الآخر بعدی کار این که گول میخورد دیگه؟ اینجوری فقط آمده که گول میخورد. سر دفعهیی تو گفتم با آن میم، من شوخی نکن. نه سوگه، من سردرناموستی تا کم. تا سکت سکت و این دفعه رفتم میگم نه کردم، بسی همیشه رفته لایات. نه لنان زیاد من بزن دیگه. دستتی که بحث کنی دیگه. حالا گندی تو کار نباشه چی؟ هر. از کجا میدی نه؟ ازیم من از ازیم من ببی، ازیم منم مبستگ همون از همون که این معمولیاتو به سفارش شد از یه حرفه ای باخاره تو سره حالا زودتر بری نکلی مهندس پیدرش اینجا بری گوره همینشه ببرمین مردشو تو و مهندس با و باقی تو و با هندگه ببرمین حرف دهنه تو بفرم میری خدای من از شر اینو خلاص. کن لباس تو بپوش بندر چیلی برکنده ها ها ها ها ها ها. گلشی چونگا شرش خونه جلوی آینه مسواک و با تلفن صحبت میگی پول داره. خوش سر و زبونه. مؤدبه. نوکر و راننده داره. عجب دیگونه اصلیات دلت خوشه. من من میخام شعرشونو کم کنم. نخونه میخوای بری خرید ظرف شوری. دهنشو میشوره با حوله سبز خوش. آفرین درست حد زدیم. میخوام برم اونجا ضعف بشورم. ترانه دیر نکنی یا ببین بازم بگم حتما بهروزو بیاری یا باشه خدافظه. خدافظ قربونت برم. پدرام توی دستروی روی توالت فرنگی نشسته. سقف چکه میکنه کنه. اونم چتری روی سرش گرفته و لبخند زدن. پدرام و تکتو از ها بالا میان و دم خونه گلشید میرن. رستوران. شهر رستوران. آقا رستوران که خوش تنید. خالشیرین گفته رستوران. آقا خالشیرین بعد چی گفته؟ نمیتونم بگم. شهر بازی. رستوران. شهر بازی. رستوران. شهر یه کاری می‌کنی. کی؟ هر کی زودتر گفت خب؟, خب مثل همیشه کف دستشون رو به همدیگه میکنن پترام تکتاره بقیه میدن گل چی در رو باز میکنه و شهر چی؟ شهر وازی نمیفهمم شهر وازی شهر وازی شهر وازی شهر بله شهر یون، ضواما شهروازی مضافه. اومد یون، شهروازی. نه نه ساکو ساکو من حساب ساکت ساکت ساکت ببخشید خانم گوتشیت. من و تکتا جون اومدیم که شما و مانی جون رو برای شام به رستوران دعوت کنید. <تصفح> ساکت ساکت یعنی قرار بود که سه نفری بریم، بازی، حالا چهار نفری میدیم رستوران. رستوران چه جاله؟ پس جالبه چقدر عالی تصمیم شد نه نه من منظورم نیست که منم امشب رستوران دعوت دارم آه چقدر عالی بچه دیگه <تصفيق> دیگر نمیتونیم مقابلت کنین ها ها دیگر رستوران هره نه من منظورت میخوام منظورم نیست که من با کس دیگه دعوت دارم یعنی... با کی؟ اه، ببخشید اه، منظورم اینه که شما تشریف ببرید رستوران ما میریم شهر بازی اتفاقا خیلی ممنون میشم اگه مانیر با خواهیتون ببریم بله بله حتما حتما فقط من باید لباس عوض کنم بابا منتظرتیم منتظرتم باشه بیا پدرام دلش شکسته ولی حرفی نمیزنه گلشیدم تقریبا فهمیده به کنار در تکیه می و رفتن پدرامو نظاره میکنه پدرام لحظه ای نگاهی به گلشید میکنه رستوران در باز میشه گلشید با دوستش و همسر دوستش وارد میشن مفاخر زدم در کنار ملودی کلاگیس به سر نشسته و منتظر اونا هستن پیرهن زرد و کت به نفش کشیده با دیدن اونها به گروه موسیقی که روی بالکونی نشستن اشاره میکنه که موزیک رو کنه. کنن اونا قط میکنن و خودش به طرف گلشید میره ملودی هم آب میوه مفاخر جلوی گلشید به حالت نمایشی تعظیم میکنه زیدچشمی میکنی عکس پنیزون منو خیلی مقدم منو بپذیریم پذیرفتین؟ بایید میتونم <تصفح> ولی من مزاح شما رو پذیرفتم دوستانتون هستن؟ بله آ؟ آه... دوستان عشق من عشق دوستانه من هم نکن بفرمایید شکنجه من از این شکنجه بردباری یاد میگیرم بانو موزیک گروه موسیقی می مفاخر زاده به طرف میز می گلشید و دوستاش سرش مفاخر سندلی را رو عقب میکشه همسر دوست گلشید می صندلی بعد دوست گلشید و حالا خود گلشید گلشید لباسشو مرتب میکنه و میشینه. مفاخر صندلی گلشید رو حال میده جلو او او. گلشید به میز میخوره و لیوان و چند تا چیز دیگه میافته میلودی هم ناراحت میشه و به مفاخر چشم قرن میره مفاخر اشاره میکنه که اصلا اشپاری نداره گلشید با حرس سندلیش رو به عقب قرن میده و پشتی سندلی محکم میخوره به شکم مفاخر چشمای مفاخر داره از هدقه در میاده نفسش بند اومده و بالاخره نفس بالا میاد و راحت میشه جوری رفتار میکنه که انگار نه انگار اصلا اتفاقی نه به گروه موسیقی اشاره میکنه که آهنگو عوض کنه موقع انتخاب غذاست همه منو جلوشون مفاخر منو رو جلو صورتش گرفته و به طرز مزخره و چندشابه ماست میخوره تالیاتلی آلا کربون آرا یادش میخیر میلان همه متعجب بهش نگاه میکنن اینقدر ذوق دارن که میتونم از یه پاتیلشو برم باللا تالیاتلی آلا کربون آرا یادت میاد نه وا چطور ملودی آخه اون سفر من همراهت نبودم وا از کی بود عمد تو رو خدا من یاد امی چینا ننداز چراش من جان؟ مرحوم شدم؟ خدا نکنی همین الان داره سرمو رو گنده تو جزایر قناری این برون بر می جه دخزون ولی بله؟ پنج تا تدبیه تلی علا کربونارا همه مهمون من هستیم کربونارا گارسون میری مفاخر میخواد به گارسون چیزی بگه اما رفته من عاشق حیواناتم از چه نوعش ؟ همه نو ایش بله الگیتور؟ الگیتار هم دوست دارین اه. وای خیلی ماهه خیلی مخصوصاً اون دندونه کتولوس بیهی نظیره همیشه چند تاشو تو خونه دارم مم. چند تا الگیتار تو خونه تون دارین؟ بله تو تختتونم میان چجورم؟ علیگیتر ها تو تختتون میان از بس شیطونم <تصفح> <تصفح> گازتونم میگیرن؟ نه عزیزم چرا گازم بگیرن؟ احتمالا خانم مفاخرزاده تمساها رو گاز میگیرن <تصفح> چیارو؟ رو؟ تمسا آخه علیگیتر یعنی تمسا خب چی؟ تازه فهمیده علیگیتر یعنی چی؟ مفاخر چپ چپ به ملودی نگاه میکن و پیشبند برای خودش میبنده مفاخر یه شیشه سوس تند برمیدار و روی غذا میرزه آقای مفاخر زاده این هاک سوسه ها؟ بله هاک سوس بگم بیارن نه منظورم نه که این اسپاگیتی به قدر کافی تند هست با این سوس تندتر تر میشه آتیش میگیری گرفتم مطمئنم به اندازه آتشی که در درون من شعله معذرت میخوام که دخالت کردم. دخالت من به این میگم توجه توجه یک عاشق پرکنده به عشق سرکنده خودش گلشید عصبی از این رفتار غذا میخوره. مفاخر مقداری اسپاگتی توی دهنش میزن و با حالت خیلی بدی میخوره و رشتهها رو بالا میکشه ملودی هم بد شکل میخوره. مفاخر یک رشته ماکارونی رو با صدا میکشه بالا. غذا ظاهرا سر دلش مونده. سوسم هم که تند بوده اوه! نوشابه رو باز میکنه توی لیوان میریزه و یه نفس میره بالا راحت شده پیشبندش روی صورتش میدازه ملودی خیلی با کلاس دهنش تمیز میکنه مفاخر زاده پیشبند رو پایین میره و نگاهی به گلشید میکنه شهر شهربازی پسری جوون با صورتی رنگ کرده نیمی زرد و نیمی قرمز با لباسای رنگی میخونه و بچه هم همراهیش میکنن. پدرام هم با همراه میشه. ای بابا عاشقی و عشق کدومه دور آقلاست این زمانه ما بچه ها دنیا رو رنگ میزنیم پلنجورکی میزنیم در ش مفاخر با پدر سوختگی به گلشید لب خرم ز گلشید روشو رو گل گلشید جواب نمیده گل گلی بازم جواب نمیده گلی جون؟ گلکم همسر دوست گلشید نگاهی بهش میکنه مفاخر چشمش به همسر دوست گلشید میخوره و به هم لبخندی میزنه مفاخر نمیدونه چی بگه گلشید بازم جواب نمیده خانم زمانی بله اجازه دارم خانم زمانی صداتون کنم مای قربی چی صدام کنید خانم زمانی البته اگه این یه خطاب مرسوم به حساب بیاد یالتون راحت باشه کاملا مرسوم اگه به من باشه ترجیح میدم شما رو بانوی دلفری به رویاه ها خطاب کنم نه زحمت همون خانمه زمانی خوبه <صحطان> <صحطان> پس چرای معرف نمیاد؟ معرف؟ بله همون که شما رو به من معرفی کرده و ظاهرم با من خیلی آشناست <صحطان> فرمودم اگه نتونن توی جمع پر مهر و عطوفت ما حضور به هم برسونن شخصم فردا در منزل شما حضور به هم میرسانند امیدوارم همین امشب حضور به هم برسانند چه حلال زده تلفن همراه مفاخر زنگ میزن اجازه میدین به این تلفن جواب بدم الو مفاخر زاده هستم شما اصلین بابا همه اینجا منتظرم منتظرملو دم خب آخه چقدر سرپیز؟ اگر... باز هم مسخره بازی با لب و زبانش. گشید بازم رو برمیگردونه. میلوگی با گردن بند طلای گردنش بازی میکنه و خود نمایی میکنه. شهر بازی؟ پدرام در کنار تکتاب و مانی پشت به دستگاه توپی در دست گرفته و آماده میشه که اونو پرت کنه. پدرام توپو پرت میکنه. میکوبه به زمین. میخوره به دیوار. یه دیوار دیگه و به هدف. هر سه با هم خوشحالی میکنن و مسئول دستگاه باورش نمیشه. انشالله بعدو ساکی میری خونه. برای مانی هم یه اسبابزی خوب میگیری. کردی سخته من چشپستان میزدم. باشه، چشپسته بزن. شوخی کردم بسته <تصفيق> بزنی بچه ها هر چی که بخوام میتونم بردارم بابا شوخی با کردم شوخی با کردم یعنی چیز بابا خواستم اجا کم بیاری که آوردی پدرام خیلی بهش برخورده باشه میزنم مسئول توپی رو برای پدرام پرت کنه پدرام میگیره زمین میکوبه و آماده میشه توپو تویی دستش میگیره تمرکز میکنه چشماشو میبنده تک تا دست پدرشو میبوسه پدرام لبخندی میزنه تمرکز بیشتر آماده شلیک با چشم بسته و به همون شکل قبل توپو میندازه و دقیقا از همون مسیر حرکت میکنه پشت سر مردی میخوره به طرف دستگاه میره و درست به هدف چه ممکنه؟ هیچی نمیتونم بگم بچه ها بری نرسیم میخواییم برداریم مهمون من <تصفيق> رسطوران مفاخر زاده باز هم به شکل نمایشی جلوی پای گلشید که در کنار دوستش و همسرش ایستاده زانو زده استدعا میکنم اجولانه تصمیم نگیرین ما میتونیم خوشوقت داریم جفت پرنده عالم بشیم ما میتونیم به تمام دنیا پرواز کنیم ما میتونیم ما پایش میتون... میکنم صداتونو بیاریم پایین دارن نگاه ما میکنن چشم همه بینشق پاک و ساده و... پا... ساده و... مم... پاک کلاس بالا! کلاس <تصفح> بالا! <تصفح> <تصفح> بابا تو این سن و سال هایجان خیلی خوب ایست خودت اذیت نکن نمیتونم دکتر! دکتر! دیرشون شده فرصت زیاده ما بازم خدمتشون میرسیم من از چشمای گلشی جون متوجه شدم که گلوش پشه تو گیر کرده میرانیشون کن بذار بیرن تموم تمام شده مطمئنم قطب <تطبا> روزدار نه <نا>. یار <تصفيق> قربون عروس خوشگلم برم هم نزنی دیگه تموم شد چند بارم گفتم من قصد ازدواج ندارم از همه چیم ممنون خدافز خدافز سه نفری از رسولان بیرون میرن و مفاخه <تصفيق> پدرام و بچه ها با عروسک های زیاد که جایزشون بوده به خونه برگشتن بچه ها به دو وارد میشن تا عدالت یادت نره مانی اول زنگ بزن خونه به ببین مامانت اومده یا نه نه اول رو تختین کنی وای وای این کیه که حرف گوش نمیده تکتاه آرام دروغ نگو دختره من حرف گوش کنم گوشی رو به مانی میده و خسته رو روی مبل میریزه و بیا مانی میشه روی مبل زنگ بزن وا ها ها ها ها, ها, ها. وای همکار کتای مفاخرزاده هوله سبزی مثل هندیا دور سرش پیچیده و جلوی آینه به خودش میرسه و عطر میزنه با صدای زنگ همکار قد بلند هم میاد برشتار پشمت جونه قوتی گاری خونه خواست را زنگ میزنه باشه دوشتم کیف بیکردم هم الو منزل خانم زمانی؟ ببکی نشده با باید داره اها گردن بندی گردنش میدازه کی بود؟ اشتباه گرفتیم این بار اون یکی با صورت کفی گوشی رو برمیدن الو مندل خانم زمانی؟ ببخشید اشتباه گرفتیم صدای پسره بود پسره دیگه کیه؟ ما این دیگه پسرش آه چی گفتی؟ بهش گفتم اشتباه گرفتیم خوبه یه بوی میاد خوشدوند اسم ارتش مالاگاسه منظورم یه بوی دیگه شاید مال پوترش بوده نه کرمیشم خوشبو بود میذاری حرفمو بزنم؟ خوب آره منظورم از بوی اینکه احساس خطر میکنم اوه. چرا؟ یه چیز مهم چی؟ زود باش بپوش بریم. آخه عشمز جون هنوز زنگ نزده ما که صندت پیدا نگردیم مهم نیست زود باش به پوش بریم تو میگی بریم, بریم بچه ها مانی و تکتا شک کردن پشت در خونه خانم زمانی میان بیا. پشت در گوش میستن آره؟ کمی از در فاصله میگیرن مرد کوتاه قد که کلیدای زیادی دستشه در خونه رو باز میکنه بچه ها از دیدن اون جا میخورن مردم ترسیده در رو میبنده و میره تو توی خونه خانم زمانی پشت در دید گفتم آره راست میگی؟ بچه پشت در بچه دیگه کی هم بچه دیگه بسره با یه دختر کچونه همقدر خودش بیای مرد بلندتر نقابی روی صورتش میکشه در رو باز میکنه بچه ها رو نمیدونه چون اونا در بوش مخفی شدن دو مرد راه مفتر. تکتا تک مانی بیرون میپرند. هر کدومشون پای یه مرد و گاز میگیرن دو مرد درد میکشن و بچه ها میرن توی خونه و در رو می میخان میخوان تلفن کنن و خبر بدن که اون دوتا مرد در رو باز کردن وارد میشن و به طرف بچه ها میرن بچه ها از ترس فرار میکنن اون دوتا دنبال بچه میرن وای وال نش رو گرفتن دست جلوی دهنشون اونا رو توی دست جلوی دهنشون می‌گیرن و اونا رو توی آسانسور می‌دن. پدرام که خیلی خسته شده بود روی مبل خونش خوابیده. آ می‌خوام هر کاری کردم بی‌داره نشدین مجبور شدم این کارو بکنم. ها خواب بودن. بچه‌ها نیستن. بچه‌ها؟ دوز اومده. اولش روی مبل قش می‌کنه. خوب حال منم با کشیده به اوشتون بیارم پدرامو و گلچید نشستن منتظرم دوزد اومده <تصفح> <تصفح> جوا ندید نه نه نه جواب بدید الو سلام گل مفاخرزاده اصله چیپس میخوره و حرف نسید آهای محترم مگه من نگفتم دیگه تماس نگیرین بلی تو یه امانتی نه من یه امانتی پیش شما دارم و شما دو امانتی پیش من منظورتون چیه؟ فکر نمی کنم هیچ مادری نخواد که دیگه بچهشو ببینم. ببینه مردی بی همه چیز او او او با نوعی دلفری به ها. این ترس حرف زدن اصلا برای شما خوب نیست بچه های من کجا پیش من به حالشونم خیلی خوبه تو دیوونه ای دیوونه ای تو بلبکه دیوونه اون سند سند هم. همون سندی که نمیشه روش قیمتی گذاشت اما قطعا ارزشش به اندازه جون بچه هاتون نیست گلی جون به من نگو گلی من هر چیزی که دلم بخواد دیگه صدات میکنم گل پر گل سنگ گل میخ گل کوچیک، چون حالا دیگه بازی دست منه خیلی خوب گوش کن آقای مفاخر ساده اسب تو اون سند رو میگیری ولی مطمئن باش اگه یه مو اثر سر بچه هم کم بشه تیکه بزرگت گوشته بای رفت رو هزار زربانم رو میگم حاضر بودم صد بدم و پیش تو بودم اون چهره گر گرفتت رو از نزدیک میدیدم بگو میخوام با بچه ها حرف بزنم میخوام با بچه حرف بزنم پس هنوزم باور نکردی خیلی کوتاه. الو سلام همم و یه سیب میخو سلام پسرم خوبی؟ تبده اینجاست اینجا خیلی خوش میگذرم. تکتا هم توی بغل مرد کوتاه سی می‌خورد. باور کردی؟ گلمنگلی. تتا. تکتا چی؟ مم. حالا دیگه با همه فامیلاتون می‌خوای صحبت کنی. به فکر بچه ها باش، گلبانو. پدرام گوشی رو می‌گیره. الو، سلام گلشی جون. تتا سلام، تو اونجا چیکار میکنی؟ گفتم مالی تنها نباشه. آفرین، آفرین. سردت نیست؟ گشنه‌ت نیست؟ یولرسیم خوردیم. الو خانم گوی بفرمین شما شما من آرام هستم من جایی که بودم آرام نبودم نیم ساعت دیگه زنگ میزنم جای قرار رو میگم از پلیس هم خبری نباشی نیم ساعت دیگه زنگ میزنم تا با هم دیگه قرار بذاریم سیب تنها که از اونجا میدمت صدای سیب قردم بود چقدر اصبی کنندی بود خرچه خرچه خرچه من صدای سیب صدای سیب سیب پدرام حیجان زده بلند میشه سیب سیب همش سیب میخوردن یعنی اونجا سیب بوده میفهمی؟ نه یادتونه که من یه بار سیب گرفتم و اونها اینجا بودن چی میخوای بگی؟ سیبای من مزخرف بود آره یادمه یادمه خب بعد آقاه برگشت گفتش که چی گفت؟ گفت گفت سیبای باغ ما یه چیز دیگه است آه... خب خودا جونو کرده گفت کجا زرد زردالو زرد زرد زرد, زرد, بند, زرد بند زرد بند زرد بند بالای تپه ماهرو زرد بند بالای تپه مارو دقیقا خودشه خود خیمگش اونجاشون رو داده بله کاملا درسته پدرامو و گلشید به انبار سیب اومدن جبه های چوبی سیب فراونی اونجا به چشم میخوره هر دو آرام و دزدانه بین جبه سیب قدم برمیدارن نگاهی از بخر جبه ها میدازن. هر دو میشینن نگاهی برمی کنن خب پدرام ترسیده نمیدونه چیکار کنه اما باشه. پس من جلو میرم شما با فاصله دنبال من بیایید دولا دولا حرکت میکنه گلشید پشت سرش نرفته پدرام یه ها همون می میبینه که به اسم ملودی میشنسیمش اما پشتش به پدرامه پدرام, پدرام برگی گرده پیش گلشید میرسه اما بالا تو کی هستی؟ دشتم راحت میشدن مسقل بازی در نیار ام... پدرام آرام بکیر پایی که داد گستری اینجا شکار میکنی اومدیم بچه هامونو ببریم خانم علی گیتار گلشید از پشت جبا بیرون <تصفح> پس کارتون تمومه فیگور مبارزه به سرک ماری میگیره گلشیدم فیگور به سرک گربهی میگیره پدرام پا به اون دو نفر نگاه میکنه آره پس بیا بریم برای مبارزه به محبته بازتری مده پدرام هم پشت سرشون در کنار جبه های فراوون سیب زن آماده مبارزه میشه گلشید شنلش رو درمیاره، پرت میکنه توی صورت پدرام رو و پشت گردنش سفت میکنه خانم زمانی گلشید پاشنه کفشش رو به زمین میکوبه و میکنه پدرام گیت شده پای دیگم هم همینطور حالا کفشاش بی پاشنه و تخت شده زن آماده است مثل با هم مثل بروسلی حرکتی با بینیش میکنه و آماده میشه بخش زنی اونا شروع میشه و پدران فقط مداشون میکنه به شکل کاملا هماهنگ و شبیه هم به همدیگه ضربه میزنن با هم میستن با هم دستاشون رو میدن و دوباره شروع میدن همزمان به همهگه لگت میزنن گلشید روی زمین میفته و زن به جعبه سیب سیب میخوره تعدادی جعبه میفته گلشید با یه حرکت از زمین بلند میشه زنم از بین جعبه بلند میشه دستش رو به سرومه از آرایشش میرسه گلشید به طرفش حرکت میکنه پدرام دنبالش باریتون که نشد آقا یارام عبدا شما ادامه بدی. مبارزه ادامه داره و در گوشه دیگه از همین انبار مفاخر زاده با پیرهن زرد و جلیقه قرمز ایستاده. مرد قد بلند سیب میخوره و اون یکی نشسته. مفاخر کنار میره و پشت سرش می‌بینیم که تکتا و مانی توی سبد یک لیفت را کن. دو مرد صحنه رو دیدن، پیش حشمت میان تا گزارش بدن. حشمت جون این وکیل اینجاست. حشمتو گل‌چیدم داره با اطلس بزن بزن می‌کنه عین بکش. کدومشون؟ اون گل شید بیش افتخار میکنم ولی کاش اطلس اما من بود بگیره نشد دو مرد با جاروی دست بلند حمله میکنن پدران فرار میکنه مبارزه دو زن ادامه داره مرد قد بلند مهوه تماشا میشه به دنبال پدران میدونم هشمت لیفتراک رو روشن میکنه صبدی که بچه ها توی اون هستن و بالا میبره که نتونن فرار کنن. بچه ها توی سبد وی مقدار زیادی سیب هستن. هشمت پیاده شده و جلو یه ترانک اون بالا میاد کمکتون جوجه کلقا. پدرام بین جعوای سیب مخفی شده. دو مرد هم ترسان پشت به پشت دنبالشن. مرد بلند لحظه جدا میشه. کوتاه‌قده لحظه‌ای پشتش رو خالی می‌بینه، احساس ناامنی می‌کنه. پدرام خودش رو به قسمتی که بچه ها حشمت حسن رسونده روی جعبای سیب قرار داره و هیچ کس نمی‌بینه حالا نمی‌شه ما رو بیاریم این پایگاه محترم اصلا اصلا اصلا آقا چرا؟ برای اینکه شما گروگان مایید و ما الان در یک شرایط بر... بر... بحرانی بحرانی هستیم. ام. پدرام با حرکات سر و دست تاکتو متوجه خودش می‌کنه. تکتا میخواد بگه بابا که پدرام با انگوشت نمیگم ها اون دعوت به سکوت دست حشمتم که توی عالم خودشه تکتا مانی رو هم متوجه پدرش میکنه. یه کمی انتاف به خرج بود الان هممون داشتیم کیف می‌کردیم این درس عبرتیم میشه برای شما جوجه کلاغا که وقتی یک کسی یک چیزی میخواد دو دستی بهش بدین تا اینقدر در بسر نکشی هشمت جان خبری نیست. آقای محلوم نیست کجاست <تصفيق> هی که یه چیزی آقای محلوم نیست کجاست جبای سیبی که پدرام روش نامتعادل شده ای داد و پدرام روی زمین میغلته دو مرد ترسیدن هشمت میکوبه پس کلش شد پدرام بلند میشه میسته حرکات نمایشی مبارزاتی انجام میده هر سه مرد با حقارت بهش نگاه میکنن پدرام با حرکات دیگه جلوشون میپره دو مرد جارو به دست نگاهی به هم میکنن و به طرف پدرام میرن کتای زربه میزنه که به دست بلنده میخوره. بلنده هم زربه میزنه و به جون هم میافته تازه یادشون میاد که باید پدرامو بزنن میزنند. پدرام از زیر ضربات دستی جارو فرار میکنه. هشمت عصبی کلاگیسش رو برمی پدرام در راه فرار از راهروی جعبه های سی به بنبست میخونه. دو مردم جارو به دست وارد همون راهرو میشن. خوشحالن که پدرامو گیر انداختن. پدرام به یاد توپ پرتاب کردنش میافته. سیبی رو برمی میداره دو مرد با جارو جلو میان. پدرام سیب و پرت میکنه درست وسط پیشونی کوتاه میفته. بلنده حرکتی میکنه. پدرام یه سیب دیگه برداشته حرکتی با دست میکنه. با پاش سیب به هوا میندازه، آماده شلیک. پرت میکنه. بلنده جا خالی میده و سیب دوباره به پیشونی کوتاه میخوره و میفته. پرتابه پای سر هم پدرام. توی سر بلنده. یکی دیگه. میخواد بلند که ضربه میخوره. پدرام تند تند پرتاب میکنه. هشمت با لیفتراک به در باغ رسیده. میخواد با بچهها فرار کنه. پدرامو گلشید، اونو دید. به طرفش مینه. هشمت از یک تراک پیاده میشه. در باغو باز میکنه. پلیس پوشیده. بله. هشمت هم گرفت. سلام علیکم. بفرمایید. پدرام کیف به دست و پرونده‌زی زیر بغل از سر کار برگشته خونه. وای بابا چه دیر کردی؟ مطمئنی؟ بله، ما نمی‌گوشیم چه دارم میرن. کجا؟ خارج دیگه. ای مگمروس شنبه؟ بله، سشنبز. با شنبه شنبه رو قاطی کردی؟ الان سانزه گفتم تا دقیقه دیگه برای خلاصی میاد. بادا آه، آه، آه، آه، آه. می می‌دوه، تکتا هم ده دقیقه بعد تکتا در خونه رو برای گرشی دو باز بازم چه خوشگر شدیتا باباد کجاست؟ رفته خودشو خوشگر کنه آخه ده دقیقه پیشش بود <تصفيق> آره؟ مانیو مانی و تکتا می‌دوهن توی خونه با پیش پدران میرن پدران <تصفيق> دستپاچه میخواد چای بگیزن آه، مانی جون چطری؟ خوشکالی داری میدید سفر نه؟ نه ما آمدیم به این که با گلشید جون بگیم که نه ازشون خاستگاری کنیم هیوای میشه پدرام جون شما به این چیزا کار نداشته باشین این کار بزرگتر است ما بعدی هم هم دیگر تعمال بکنیم شما بزرگ میشیم بیریم دوباره زندگی تو یعنی نه یعنی دقیقا چرا ما داشته باشین داریمش با سینه چای پیش گلشید میاد که اوی مردنش هسته بعد هم پشت سرش میدون نمیدونی دارم پشت سر گلشید دستتون چرا میلرزه؟ پلب بله هم میلرزه برای چی؟ گذاشتمش رو ویبره پس دیگه رفتنی شدین بچه چای اشاره میکننگه زود باشتی سند رو چیکار کردین؟ ام. سند رو اهدا کردم به این موزه آفرین آفرین دقیقا جاش همونجاست آفرین جای شما کجاست؟ یعنی منظورم اینه که کجا تشریف میبریم؟ تالا اینه ده دفعه پرسیدین به نظر کمتر میاختم آلمان چرا؟ اینم ده دفعه پرسیدین <تصفح> نه بابا خب میدونین من فکر میکنم که آدم برای موندن احتیاج به انگیزه داره مثل هر کار دیگه آخه واقعا چه انگیزه برای موندن خب البته من الان توی شرایطی هستم که اگه یه نفر به من بگه نرو نمیرم آخه کی پیدا میشه که عرضشش داشته باشه؟ بچه ها هر دو به پیشونشون میکنم خب میدونین من الان تو موقعیتی هستم که اگه خود شما به من بگین که بمون من میمونم من؟ بچه ها خوشحال اشاره میکن که بکبو که بکبو من کی باشم به شما بگن بمونه ای وای نمیفه خب گلشیدم ناراحت شده پس خدافز چاییتون ممنون برای چای خوردن نایمده بودن چای رو تو هاپیمان میشه خورد ولی تنها مگه مانی با نیست بعضی رو نمیشه با مانی خورد متوجه شدم ولی جالب بود مانی بریم تکتا جون خود دفعه تکتا ناراحت میاد توی آغوش گلشید مانی هم ناراحت پدرام یه جوری انگار میخواد یه چیزی بگه چی؟ اه... کاش یادم میموند اه... سبزی خوش میکردم میدادم میبردین گلشید چپ چپ به پدرام نگاه میکنه خیلی عصبیه گلشید میره مهم. تکتا پشت سرش مانی هم داره میره مهم. که پدرام نگهش میداره مانی با حرکات لب و سر به پدرام میفهمونه واقع انکه و میره پدرام پشت سر اونا دستکون میده تکتا گریان توی اتاقش میره پدرام عصبی پرتقالی پرت میکنه به دیوار بر میگرده به دیوار روبرو میخوره و صاف میخوره پس کلش آها تازه انگار به خودش اومده کمی فکر میکنه و خوشحال می توی اتاق تکتا تکتا پریش رو دهت می و لبخند می زن بلند شو بهت خون میدم نگارشون می دارم ازش خواست کاری میکنم مثل یه مرد بلند شو فرودگاه پدرام و تکتا با عجله وارد میشه. شن پدرام با دم پایی اومده مانی مانه رو توی مسافرها نمی بخیم میرن طرف اطلاعات ببخشید خانم این مسافرهای هواپیمای آلمان سالن ترانزیت. سال میشه پای میکروفون بگین نرو منظورتون چیه؟ همین فقط بگین نرو به بگین گلشید گل نرو ببخشید آقا ما همچین پیجی نده حیاتیه خانوم خواهش میکنم حالتون خوبه؟ نه خیلی خوب نیستم چرا داد میزنی آقا اینجا ممنوعه؟ بله آقا ممنوعه میخوام برم اون بر مسافری؟ نه خیر، با جویی تموم چا بود؟ با نبود، اجازه نبیدم برای اون قسمه متشکرم. متشکرم. متشکرم. ده بریم یه های توپ ماموتی از هوا موفی به دست پیدرام به سر بچه اومده تو توپش، اما پیدرام توی فکری که با توپ یه قاری بود آقا، آقا، تو هم آقا، تو هم آقا پسر بچه همچنان بارونی پدرامو که توی فکری میکشه و توپشو میخواد مردی به پدرام میرسه و حالشو میبینه چطور؟ خیلی حرف میزنه خب بگو حرف پدرام مصمم روی سندلی فرودگاه میره ساکت همه ساکت میشن حتی پیجر فرودگاه پسر بچه بازم بارونی رو میکشه که تکتا با پشت دست روی دهنش میزنه و میگه ساکت حلامش. پدرام از صندلی پایین میاد و به سالن ترانزیت میسته یکی دو بار توپو بالا و پایین بندازه توپو توی دستش میگیره تمرکز میکنه دستش رو پایین میاره تکتا بوسهای بر دست پدرش میزنه و بهش انرژی میده خودشم دعا میکنه پدرام دستی به سر تکتا میکشه چوبو دو سه بار به زمین میکوبه و چه لچناوری توپ میره میخوره به تابلو میخوره به دیوار و قرم اینم یه شیش صد یوروئه لوفتانزا ترانزیت ای چی یعنی رفتم میدونستم نمیچینی دیگه باهات صحبت نمیکونم میدونی تکتا تا جون ناراحت نباش بالاخره یه کارش میکنم دیگه همون توپ ماهورتی یهو هم میخوره تو سر پدرام زنی از بغنیسش رد میشه چقدر بیافه شما بر من آشنا باید مناجون ما مببخ بله خودشون هم تکتا میدوی در آغوش گلشید که هم کنارش ایستاده پدرام خوشحال میدوی مانی رو بغل میکنه گلشید هم تکتار و هر چهار نفر با همدیگه میرن به طرف یک زندگیه شرابندگان ارجمند فیلم اسپاگتی در 8 دقیقه را شنیدید این فیلم محصول سال 1383 کشور بود امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه مثل همیشه صدا بردار این برنامه جناب آقای علی حاجی نوروزی بودند و تهیه کننده و سردبیر فرشاد آذر بنده هم که به عنوان نویسنده و گوینده در خدمت شما بودم، بهرام سروری نژاد هستم. آرزو میکنم سعادتی داشته باشیم و عمری باقی باشه که باز هم بتونیم با رادیو فیلم دیگهی در خدمت شما باشیم تا اون موقع خدا نگرم <متصفان> تو <متصفان> بنی خوشگلی خ بر سری فکر می کنی از همه عاقل کردی من میتونم که پسری چی میگذره آا هوور باغ است تو همشه داره اوور باغت با ماشن داه دنیا رو رنگ میزری یا بابا. این چقالال خوب اونجگی داره دییر چهقالال خوب اونجیگی دارهو با از همه نیت تره این با از همه را ب داره این با بااشگی ش ک دوهیور دور اقلاس تیم این ما ب ها دنیا رو رنگ میزنی می ها دنیا رو رنگ میزرییم یه بابا. harsh as a cinema half.